بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم شرح لصدری و یسر لعمری و حلوقت ملستانی یفقه و قولی بسم الله الرحمن الرحیم درس امروزی ما شما در وجود خالق و اچنقه خالق حقیقیست در قسمت اول که وجود خداوند مطال جل جلو است اگرچه انسان ها در طول تاریخ بشریت تا کرن هجده همه انسان ها به وجود خالق ایمان داشتند، عقیده بی خدایی عقیده الحاد این عقیده بود که برمخستین بار یک تدار از اشخاص پیدا شدن که اید را کردن و کارل مارفز اولین کسی بود که دین افیون یا مخدر ملت ها و کسایی پیروی ازو میکردن بلاخره به با مخالفت با خدا مخالفت با دین پرداختن ولی ما انسان ها انسان ها امروزی خصوصا وقتی که ما شما فعلا در بخش آکادمیک کار میکنیم در شفیه اکادومیک شیشتیم در پاهمتون هستیم، ببینیم که چقدر دلایل به وجود خداوند متعال شد جلو هست که ما خدا را بپذیریم و باز ببینیم کسایی که به خداهایی که اینا ایمان دارن خدای حقیقی، خدای راستین، کدام خدا هست و دارای چی صفات می باشن. تا ما بتانیم که با عقل و دانش به اساس دلائل با منطق، با فهم وجود خداوند در درک بکنیم خداوند متعال جل جلاله میگه که ولو تقف وما ليس لك به علم در چیزی که علم نداری بای توقف نکنی بای تحقیق بکنید با ریسچ بکنید بحث بکنید تا حقیقت به شکل درست بفهمید ان السمع گوش‌هایتون و البصر با و الفؤاد و قلب‌هایتون کل اولایی که که آنها مسئولا تمامی اینا مسئولیت دارن در مقابل خداوند متعال جل جلاله نقطه اولیده که میخوایم در قسمت خدمت شما عرض باید بکنم یاس که ببینید انسان در حقیقت دو چشم داره یکی بسارت است و یکی هم بسیرت بسارت و بسیرت بسارت که حس باصره هست ممثل دی چشم انسان است و بسیرت نظر قلب و فکر و عقل هست اینه بسیرت اگر با شما با چشم سر خود نظر بکنیم ببینید یک انسان مسلمان یا یک انسان به صورت اوتیش وقتی که ما به طرف شیشه ها نظر بکنیم ما خداوند متعال بر همه ما و شما چشم داده ولی ایدو چشم چه وقت کار میتونه بکنه در صورت چشم کار میکنه که نور آفتاب وجود داشته باشه مثلا اگه شما به صحرا برین به داخل از صحرا ببینین که تاریکی است هیچ نوری وجود نداره مهتاب وجود نداره و آفتاب هم وجود نداره. شما وقتی که درام میرین بزیر پایتون یک چیزی میاد لغت فرام میمانین میترسین که مار است. ولی وقتی که روشنی میشه سهل میکنین که مزید که ترسیلیم ایمار نبودی رسمان بوده. در قسمت دیگر میرین یک تو تخشت افتاده شما فکر میکنین امی توتر سنگ روزو انداختی یا خشت روزو انداختی این خشت بود انسان چشم داره ولی چشم انسان به نور آفتاب ذرات داره اگر نور آفتاب نباشه چشم انسان دیدن نمیتونه بینیوی شکل انسان عقل و دانش و فکر که مسئله حمزی است در اصلاحات شرعی وقتی که قلب استعمال میکنه منظورش فکر و اندشه و عقل انسان است. انسان بسیرت داره عقل داره ولی عقل انسان به نور ایمان زراد داره اگر انسان عقل داشته باشه علم داشته باشه ولی نور ایمان نباشه مثل اون است که چشم داره ولی نور افتاد نیست در تاریکی حق و باطل افتاد کرده نمیتونه فهمیدن مقصده به این شکل در قسمت وجود خالق انسان باید با بسارت و باب سیرت خود چند وقت روزه پاس روزه. بسم الله الرحمن الرحیم این به قسمت وجود خداوند مطال جل جلاله یک سلسله دلایل وجود داره که ما و این امروز مورد بحث قرار بیم و ببینیم که چه قسم انسان میتونه وجود خداوند مطال جل جلاله را ثابت بکنه و چه قسم به خداوند مطال جل جلاله آدم ایمان بیار. اول خود فطرت سالم انسان است. دلیل اول چیست؟ فطرت سالم انسان است. در خصوص فطرت سالم انسان از امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی یک کسی پرسان کرد که ای امام مسلمان ها ما قسم خداوند درک بکنیم امام گفت که شما در کشتی بزرگ در کشتی بزرگ یک وقت شما سوار شدیم، تصور کنید شما در کشتی بزرگ هستین و در وسط بحر تمام کپتان ها و مسئولین کشتی میان برطان که کشتی از بین دفته شکسته و موج بحر متلاطم است و کشتی در مقابل است و استادگی نمیتونه بناهن صد فیصد ما شما غرق میشیم امکانات نی بلکه صد فیصد میگن که ما شما غرق هستیم دیگه هیچ رای نجات نیست به اینمی لحظه که شما نزدیک که غرق هستین و می که تمام وسایل مادی که شما اعتماد میکن سر انجینیر های کشتی سر کپتان سر مسئولین کشتی سر خود کشتی اعتماد میکنین اما اینها از بین رفتن آل شما به قلب چی میگذره؟ در قلب ما اتو احساس پیدا میشه که یک ذاتی وجود داره که در دا اینمی لحظه هم اگه خواسته باشه را نجاب میده امام جعفر صادق علیه السلام گفت که اینمی ذاتی که در آخرین لحظه دشواری ها که هیچ وسیله انسانی و مادی به نقش شما پیدا میشه اینمی ذات خداوند متعال جل جا رو هست. بنابراین انسان به اساس فطرت خود به وجود خداوند متعال جل جلوه اقرار و اعتراف میکنه ولی دانشمندان میگه که اگر انسان با عقل سلیم خود خالق حقیقی نشناسه و با وجود خداوند متعال ایمان نبیاره چون ایمان فطری در قلبش است بالاخره او در جستجوه خدا میباشد. زیرا بر انسان همیشه زندگی انسان به ایک حالات نیست حالات غم، حالات درد، حالات مشکلات بر انسان پیدا میشه و به حالات انسان به کسی که از او که قوی تر است اگر خالق حقیقی رو نشناخت بلاخره اگر با تکبر خود به خداوند سجده نکد بلاخره مجبور میشه به انسان سجده بکنه بلاخره اگر از سجده به خالق حتی سر بازد بلاخره اینمین سال روز میشه که سجده به یک حیوان میکنه شما دیدین همیشه میبرین که یک نفر به یک مجسمه به یک حیوان مجسمه یک حیوان به چیزهای سجده میکنن که انسان من حیث شرافت خود وقتی که میبینه تعجب میکنه که چرا انسان از این مقام عالی که خداوند برش داده بایین شده و به اینا سجده میکنن به حیوانات و بز دیگه انسان ها. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بيقول كل مولود كل مولود يولد على الفطرة ثم ابواهو يحويدانه او یونس سرانه او یمجسلنی كل مولود يولد على الفطره هر الطفل او هر طفل نوزاد با فطرت ایمانی تولد میشه هر طفل نوزاد با فطرت ایمانی تولد میشه سمه سپس عبواه و والدینش یو حفیدانی هی ایره یهودی میسازن اوی و نصرانی یا ایره نصرانی و مسیحی و یسایی میسازن اوی و یا ایره مجوسی و آتش پرست میسازن بناهن این عمت خداوند متعال جل جالوهوی جل است که هر طفل که در خانه هر شخصی که پیدا میشه و ولو ده مسلمان باشه یا غیر مسلمان ای به رحمت خداوند متعال جل جلاله دارای ایمان فطری می باشه ولی پسون شورای ده خونی اگروسیته پیدا شود ده خونی یک آمریکایی پیدا شود ده خونی یک گوندو پیدا شود ده مسلمان پیدا شود ده خونی هر کس سیاپوست سیاصفه پوست یا زرد پوست, پوست اینمیت فل ایمان فطری داره ولی سپس والدین نشیره بالاخره از فطرت سالم کشیده بیرفرد پراست آتش پرست مسیحی و مجوسی میسازند در قرآن عزیزی گوشان پیش ازی که انسان ها مجرد چه چه از آدم علی السلام خداوند متعال زوری آدم علی السلام خلق کرد و برای اک تمام زوری آدم که کل ماه شما بودیم خداوند متعال خطاب کرده که الستو برم بکن. پیش پیشه که ما شما خلق شویم تمام زوری آدم خداوند مطال در آلم الستی را مگن در این روز ای رو خلق کرده و برزینا گفت که الستو برم بکن آیا من خدای شما نیستم تمام زوری آدم علیه السلام چی گفتن؟ قال و بلا. گفتن که بله حال و بلا گفتن بلی پرودگار شما خدای ما هستین بناهن ما و شما ایمان حقیقی ما از اونمو روز است. همگی ایمان فطری دارن ولی بعدها انسان به اساس تأثیر،, تأثیر پذیری و با اشتباهی که مثلا به حساب فطرت ناسالم دارن فطرتشان تغییر میکنن عقلیتشان تغییر میکنن دانششان تغییر میکنن و بالاخره متحصر میشن و بعضی افکاراندشه ها بالاخره از فطرت ایمانی خود انکار میکنن بناهن گفتم میتونیم که فطرت سالم انسانی تقاضای ایمان داشتن و وجود خداوند جل جالهوره میکنن دلیل دوم دلیل اقل است که اقل انسان در تلاش حقایق است اقل انسان و عقل انسان اگر ما شما اگر ما شما با دلایل عقلی رجوع بکنیم یک روز میگن از یک بادینشین پرسام کردن که بادینشین اغادامی که در صحرا یک کوچی هست در سهراز زندگی میکنن هیچ چیز رایده و سواد هم نداره علم و دانش هم نداره و مکتب و پانتون پا هم نرفته این سوال میکنم که شما چطور با وجود خداوند ایمان داره؟ آقای با وجود خداوند ایمان داره؟ مگه بله با چی دلیل؟ او با اونمون نظر ابتدایی که داره با اونمون نظر ابتدایی که, که چی میگه؟ بگه ببینن وقتی که ما به صحرا بیرون مبرایم چاپای قدم چاپای قدم کسی رو میبینیم که در روی سهرها هست اینمی چاپای قدم وقتی که ما سیل کردم می عقل ما برای من میگه که متوجه باشون که اینمی چاپای قدم اطمان عزیزتر از اینجا کدام انسان تیر شده اتمن از این را کدام انسان تیر شده در سهرا که چاپ قدمش هست و وقتی که من در می سهرا می و باز می که فضلات شطر در می سهرا دیده میشن شن وقتی که بگم من فوزلات شطر اینجا می بیدم اینمی فوزلات شطر بر من ثابت می سازه عقل من حکم می که یعنی بی شطور که در روی سه افتاده، افتاره از ایرا شطور تیر شده بناهن وقت که چاپ قدم باساس اقل ما دلالت میکنه با وجود کسی که را تیر شده انسان و فوزلات شطور باساس اقل ما که اقل ما حکم میکنه که اتمن از اینجا شطور قبل از شما تیر شده خب این آسمان ها این ها این درخت ها این وجود خود من اگر من عقل خود در کار برتون تمام از اینا دلیل به این هستن که خالق وجود داره که نور خلق کرده عبدالمجید زندانی یکی از دانشمندا است اصلا فارماسیست از پسان در علوم اسلامی تخصص گرفته او میگه من یک مادی پرست که با وجود خداوند ایمان نداشته امراه زو بحث داشتم پرسانش کدم که آیا این زمین و آسمان کسی خلق کرده خودت کسی خلق کرده گفت نه کنش تصادف هست خب میگه من پرسانش کدم که دباری بوتایت چی میگی دباری بوتایت چی میگی بوتایت کسی خلق کرده بوتایت کسی جور کرده و یا روی تصادف سلیپر شده روی تصادف بندهایش آمده بعضیش سلیپر است بعضیش به شکل موزه است بعضیش به شکل چبلق است آیا این هم تصادف است گفته؟ این ممکن نیست چرا که شرکتی داره کارگری داره اینجینیر داره کسی است که برنامه سازی میکنه میگم باشه گفتم خیتو انسان از به هم خود به فکر میکنی که یک بود امکان نداره که بدون یک شرکت جور شود یک بود بدون شرکت جور شود ولی ای که مثلا خود پیش که تولد شوی مادر میبینه که شیر پیدا شده و این شیر که اگر شما با شیرای عادی کیاز بکنین شیر پودری دکتر بردنه اینه شیر مادر از شیر پودری که بیتر تر است به میدیو تفل شیر مادر خوبتر است این که خداوند خلق کرده این چشمای خودت که اینجا خلق کرده اگر تصادف باشه خب تصادف وقتی که باشد چشما اونجا یک پابریک است چشما آمده میره و تصادف یکی چشمش درویش در میباشه یکی چشمش در پشت کلیش میباشه در جای که خورد دیگر تصادف است ولی وقتی که چهره خودا انسان سهل کرد که چشمایش منظم منظم منظم است، منظم است. و این جهان ببین کلش به شکل خلق شده که وقتی که شما سیاره ها رو ببینید در آسمان در حرکت سیکی با دیگه تکر نمیکنن این کلش تصادف است. کجا از عقلتان؟ کجا از دانشتان؟ میگه این نفر بلاخره جواب نداشت ولی ازی که ازی که در وجود ازی ماده طلب وجود نداره طلب یعنی خواستن ماده طلب چی رو میگن؟ دریانتازی کسا سو چوری این باوجود اینکه ای عقل دارن ایمان نمیرن میگه اینا به خاطر ایمان نمیرن که نمیخواین با شکل مثال مثلا شما شما میرین در بازار کله ماوی شما از بازار تیره از مارکت تیره شیم دم روی ما ده فروشگاه و یاده از هر رای که میرین در هر شورای ببینیم که کجا کریتای میوه گذاشته شده اینا لیکریتای میوه که گذاشته شده کل كل موطئ هست یک نفر طلب وجود داره در وجود ازو طلب است مثلا چی طلب وجود داره یک طلب وجود داره که من من که من میخوام که یک چوراک سی بخرم و کسی دیگه میگه من میخوام که یک چارک انار بخرم ولی یک نفر دیگه که پیسہ داره میوه هست ولی در وجودش تقاضا برای گرفتن میو میونیس بناشم خانمین، ایلام خانمین، مم خانمین، کل ما شما وقتی که من ده، مری مثلا زندگی میکنیم کل ما و شما، کلی که کل ما پیسه داشتیم، ده که کل ما پول بود. ولی این تقاضا داشت که باید سی عمرای با خود بخره این تقاضا داشت که باید سی بر خود بخره از این خاطر این با عمرای سی به آمد. و ما با وجودی که پول داشتیم، و سی با وجود داشت، لاکن نوردیم عمرای خود. یک نفر است مثلا در صنف است آله امکاناتی اول نمره شدن حتما از سطفیت کنسان اول نمره شدن یک صنفیتان از امیانو تصمیم میگیرم میگم من کوشش میکنم که ساعت اش بجه پیش اش بجه داخل صرف بیم. کوشش میکنم که درسای ما من منظم بخونم. کوشش میکنم که وقت خود رو تقسیم اوقات بر وقت خود جور بکنم یک دقیقه وقت خود هم همزاری نکنم از این خاطر از آغاز برای خود با عقل خود با دانش خود تصمیم میگیره که من باید اول نمره شوم از این خاطر این شاگرد وقتی تصمیم تسلیم گرفت با این میقسم بر از اون پلان جور کرد بل اخره شاگرد اول نمره میشه در حالی که او هم 12 پاس از دیگران هم 12 پاس هستند هم مکتب خود دیگران هم خواندن چرا او اول نمره شد و یک شاگرد دیگر ناکام شد به خاطر ازو که به خاطری که در, در قلب از او طلب آمدگی قبلی به پذیرش حق وجود داشت حالا در بین ملیون ها زن امریکایی یک زن به نام بیتی باومن طلب در قلبش می باشه که ما باید به حق برسم وقتی که می خواهد به حق باید برسم این به حق چیخصم می رسم یک کتاب مطالعه می کنم دیگه کتاب مطالعه میکنه ادیان عدیان مختلف مطالعه می و بالاخره باقی از مطالعه چندین کتاب به این نتیجه میرسه که قرآن از این وشان به دستش با عقل خود وقتی که کلی کتاب رو را مخایستن آیا من این صلیبی که دستایش بند اینجا و گ و الی یهودا به قتل رسوندن آیا ما برای ازی بکنم عقلش میگه که نه خود ازی عاجز است خدا که باید ذات قوی باشه این خودشه که ای چه قسم بچه‌ی خداست که دیگه را کشته ازی خاطر عقلش برش میگه که نه نه نه نه ای خدا شده نمیتونه پس وقتی که من می میبینم که در بتخانه که بت است چی بت است یک نفر مثلا ایواس که گوشت گاو بخوره گاو مقدس قرار داده و اون ده سرکاو می‌کردن و در اندوستان مردم شکمهاشان در تختیر پشتشان چسبیده یک رو پیگ گدایی میکنن ولی گوای چاخشا قصر رو نمیخورن این خدا شده نمیتانه این کدام است که این نعمت اینجا وجود داره از این ما از بر ما مگه نباید گاو نخوری و ما انسانه که کرامت دارم کرامت دارم من به یک حیوان من باید گواه مقدس صاب کنم و خودم احترام بکنم. به این خاطر خانم بیتی با و من با حق و با که داره چون در وجود از او طلب وجود داره می خواهد که حق پیدا بکنه بلان انسان اگر خواسته باشه که حق پیدا بکنه بلاخره حق بر از او حق آشکار می شه ولی اگر یک نفره، در حالی که احزارها دلیل وجود داره هزارها دلیل وجود دارد که انسان اگر دو دقیقه در وجود خود فکر بکنه به دو دقیقه فکر کردن انسان در وجود خود انسان دلیل بسیار بزرگی است به وجود خالق خالق, خالق و به وجود خداوند متعال جل جلاله. هر قسمتی وجود خالق انسان فکر بکنه چرا واسلام دست ندارد؟ ببینیم ای دست ندارد. اگر آخیونان با ای دست ندارد، ای دست اگر به شکل قوت نمیشد وقتی قاب نمیشد مجبور هم میشه برای زمینی برادر دست مقطع نمیشه دست توهم قط نمیشه خیلی تو دکل لحمره بگی من دارم تو میکنم تو رو بگی دارم مرا بکو امشام ما بعد بادیگار درود داشتم ای بادیگار که دوستی کار میکرد به رخصتی میرفت گوش نمیمانده ولی خداوند متعالیه چون اگر انگشتای من انسان فکر میکنن اگر انگشتای من میخستم دراز خب انگشتواس قاط میشه ولی ها قاط نمیشن. بعدم مثل ژاپونیا واره برنجا ها؟ شکل کلکا خوردا میرسین. ولی که مثلا انگشتواس انگشت وقتی که کامپیوتر کار میکنیم مجبور ها ولی مثلا وقتی کار میکنه که قسی مثلا یک نفر بالای 10 که خود اه؟ دکر که خود کار میکنن. و او باز کلکای شورا خود نمیرفته مجبور یه ساعت تمام که حتی چشم انسان؟ یعنی نفر فکر میکنه علی خو وقت انسان وقتی که خداوند براش عقل داده روز آخر انسان میگنه که ها؟ ساعت‌ها چروغ داره و بی‌راهه میرود اینمی عقل تو بر تو میلیون‌ها دلیل در طبیعت وجود داره ملیون ها دلیل است که هر کدام از اینا را انسان کنه مثل که سعدی میگه که برگ درختان سفس در نظر هوشیار هر ورقش دفتر اس معرفت کردگار اول وقتی شما ده خانیتان درخت دارین درختان درختتون دا بخوریتون دارین و منزل دوم هم زندگی میکنین وقتی میخواید آب به منزل دوم ببرید آب به منزل دوم ببرید مجبور باید واتر پمپ باشه یا سطلا را گرفتین آبو بالا ببرید خوبی درختتان چطور است این درختو ببینید که از منزل سهم سه تجاوز کرده وای دمو آخرین برگ درخت ببینید که آب میرسه چان واتر پمپ درخت این واتر با چی به خلق کردن از این خاطر هر برگ درخت یک انسان وقتی که شما برین پیش یک متخصص زراعت و از این پرسان که برگ درخت که مثلا بندازه سی مزل بالا هست چه قسم از ریشت تغذیه میشه اونا بر تانبه یک درخت یک جهان بزرگ است که این تغذیه میشه چشم انسان بسری وقت انسان فکر میکنه که کاش که چشم ما اه به این قسمت های میبود پشترام میدیدم پیش رویام میدیدم این چون چشم خوری گذاشته شده؟ والی و انسان وقت درک وقتی درک میکنه وقتی که دیوال مییره که سرش به دیوال میخوره سرش به می کفو ولی چشماش مسئول میمونه بالاخره میگه که به خدای این حکمت خداوند مطال جل جلاله است که خوب است که چشم ما اینجا نبود اگر نه چشم ما والا کور میشود اما قصره در کتابه 3 و 4 مکتب اگر خواننده باشین یک نفر میگه یک روز نزدیک یک درخت خاو کرده بود چی عجب خدای عجب ایده ای چی حکمت است این بوتاگر که کدور میبینن که چه شوشه ی کو یمن بوتای کی زیت کادو خطوی بسیار کلام کَرَن و این درخت کلام است که چهار مغزکای خرد خوردای درخت است اصلا میگه عقل ما میگفت و خودش مگه عقل ما میگه که باید این کادوها دای درخت نیدان ها و این چرمزکو باید بهت بگم که خرد میبودن میگی خب خلاص به می فکر و به عقل خود استراحت کرد یک وقته دنیای منوس خواو نه بری چشما رفت که از بالا 4م خطا می خورد فرقش میخوره استاپ میشه یک دفعه میگه خدا شکر که به گپ مال نکردی اگه این 4 در درخت کدی می بود کلمه کافی <تصحیح> بود اینالا هر چیزی که انسان میبینه هر اوز بدن خود انسان فکر میکنه در هر اوز بدن انسان دلیل است و وجود خداوند متعال جل جل رو شما دلیل ببینیم مثلا دلیل دیگی که علماء و دانشمند ببینیم مثلا بعضی دانشمند چی میگه در قسمت اقل نیوتن میگه که نیوتن یک دانشمند است. چی میگه میگه در باره آفریدگار شک نداشته باشین در باره آفریدگار شک نداشته باشید زیرا که قابل تصور نیست که اساس و زیر بنای این هستی تصادف محض باشد. نیوتر یک دانشمند است میگه این هستی جهان تصادف شده نمیتانه اسپنسر یک دانشمند از قول هرچل یک کسی دیگه است میگه میگه که هرچند دامنه علم گسترش یابد دلایل محکم برای وجود خالق ازالی که توانایی به دارد افضایش پیدا میکند بنابرین زمین شناسان ریازیدانان کیهان نوردان فیزیکدانان و غیره دانشمندار در استحکام بخشیدن و بنیاد علم که همان بنیاد عظمت خداوند یک است شرکت نمودن یه روز یک دکتر فبر من میگه میگو سات شما خو خداوند به اساس تیوری درس میدین هر وقت که من در آزمایشگاه داخل میشم من دکتر طب وقتی که بالای ماشین ماینات تلویزیونی قرار میگیرم در مقابل ماشین مکروز رفتن که سر ماینات تلویزیونو میگاد شکم از اون رو که ما باش ما ببینم که چی کپ دیدم که در داخل شکم از این انسان در داخل شکم انسان مثل گوشاهر میگه میگه بدرونت چی شهر میمنه است <تصفيق> و داخلت مثل شهر میوانه است قص شیرین و ملک فرهاد است تو داخل شکمت یک مرتبه با تلویزیون و مواینات تلویزیون داخل شکمت وقتی که دکتر مواینه میکنه که در میرید کلام مشکل داری یک مرتبه شما داکتر دکتر شما تلویزیون رو, رو طرف میاد درو که من داخل شکم خدا ببینیم ببینید که بچی سیستم های داخل شکم انسان است که غیر بغیر ذات خالق متعال هیچ کسی نمیتونه که ترتیب و تنظیم بکنه تو امروز انسان ها نتانستند که حتی ببین یک فابرکه خونسازی یک روزه یک قفلک که نو تولد میشه یک قفلک که نو از مادر تولد میشه در جسمی ازی خداوند مطال فابرکه خونسازی را ایجاد کرده داره نداره خونی که وجود در زراد داره برش میرسی یا نمیرسه و اگر تمام دانشمندان جهان نترسند که ادقل یک فابریکه خونسازی بسازند از این خاطر مجبور هستند همیشه وقتی که به خود ضرورت پیدا بکنند گدایی میکنند او مردم این خون بدین او مردم این کمک بکنید حالا تو از خدا انکار داری حالا تو میگی من بسیار انسان با دانش هستم من بسیار با فهم هستم من بسیار علم دارم من بسیار حکمت دارم من بسیار باخبر هستم هیچ وقتی که توی قدر گفاره میفهمی نیرویی که یک فابریکه خونسازی جور بگی چه ضرورت است که همیشه باید از دیگران خون به برای بره مستحقین بر فلانی بر فلانی ببینن چرا نمیتونه و چرا یک تپلکی خوردی که یک روز است امون نو که تولد میشه پای ده اگر دست ازی از ده جای دکبو خراب ببینن که از بدن از خون جاری میشه یا نمیشه بالا اندر داخل وجود از این طفل داخل وجود از این طفل است یا نیست وقتی که خون است خود از کجا شد اصلا یک فابریکی خون سازی است نیست بریکی که خلق کرده ذات خداوند متعال است که به یک که یک روزی بسیار خود طفل یک ساعتا ای امکانات داده که فابریکی خون در قلب ازی باشه ولی یک یک یک کشور بسیار بزرگه که میتونه به مریخ بره ولی یک دیانه فابریکی خون ساختن نمیتانه چرا؟ این کلش یک انسان ببینه وقتی که طفله یک طفله شما ببینید که نهو تولد میشه خوراک از رو بین یک چوچه مرگ که چی قسم خوراک میکنه انسان هر کدام ازیر اکی چیز بیکنه یکی از دانشمندهای دا دیگه چی میگه؟ میگه یک وقت ما, ما میگه ایران بودم که امی در تخم از تخم چوچه مرگ چی قسم نبراید چی قسم چوچه مرگ تخمه مشکنانه میگه بر من تعجب بود که خداوند این قدرت به این چشعهک مغ می که از بین تو خون برآید میگم من بعد ها وقتی که به حساب سائنس زیاد در باری این مغ تحقیق کردم دیدم که پیش از اینکه این چشعهک مغ از تو خون در روزهای اخیر خداوند در نول از ازی در نور ازی یک سوزانا که خود را خلق میکنه یک سوزانا که خود ایجاد می دان ولاتی ای چچامورق این چچامورق وقتی که بیست وجامیشه ایننمی با ایننمی سوزنک داخل تخمه سوراخ میکنه از داخل تخمه سوراخ میکنه وقتی که سوراخ میکنه وقتی که تخمه سوراخ میکنه در اینجا هوا از بیرون داخل تخم میشه وقتی که هوا از بیرون داخل تخم میشه این چوچه حکم در داخل منجمت میشه مثل که شما اگر مثالش مثلا اگر در یخچال دبا این یک گلاس در خانه که یخ میکنه اگر آب بانین دو سات باد وقتی که بریم به یخ تبدیل شده و گلاس شکستانده مشکل نیست دیدم این هالو وقتی که ای این وقتی که با امرائی ایسو زنک در است دا از داخل تخم سوراخ سراخ پیکنه بلاخره هوا از بیرون داخل میشه در دا داخل تخم وقتی که هوا داخل میشه یه ای آیستایت چوچه خوش شده میره منجمد میشه وقتی که انجماد شما کلتان بای ساب سایست میفهمند وقتی که منجمد میشه این چیز کران میشه این وقتی میشه تخم ببیشکل دو توتا میشه واش شک به خودت میگه او وقت من میگفتم که ایچوچامورگه کی این قدرت رو داد که از تخم برای امروز بهم که کی یعنی سوزنه که در نول تو چمار خلق کرد تا ایچوچامور این تخمه سروق بکنن بالاخره از این سوزنک من میفهمم که ذات وجود داره که در بسیار جایای دقیق دقیق برای انسان زندگی یک دانشمند دیگه چی میگم ما درباره پرنده ها تحقیق نکردم دارم روی پرنده ها تحقیق میکنم کردم. لگی یک روز از روزها در بحر رفتم دیدم بعضی پرنده هاستن در روی بحر، در روی بحر حرکت میکنن. میگه یکی از پرنده ها رو دیدم که آب آب بازی کردن نمیتونن. آب بازی کردن نمیتونن. ببین قدرت خداونده. میگه پرنده ها نمیستر سر بحر میگردن. و دا داخل بحر آب بازی کردن نمیتونن که مای بخورن. بگه ما گفتم که خدایا این پرنده چی قسم تغذیه میشه در بحر خورتر هم میدونی پرنده ها در سر سر بحرم بگردن یا در دا داخل بحرستان خب مایل میخورن یا کلمک های بحری را می این میگه چی قسم قسم ها میخورن میگه که این پرنده که خداوند تو یک شکل داده که در دا سر یک شاخ داره، یک شاخ اینجا دارن این پرنده‌ای یک شاخه دا داره بالا سر خود داره اینجای ای ته دا بالا داره و یک شاخ هم تو داره میگه من گفتم خب این پرنده‌ای که با این قسم مثلا دو تا شاخا و اینجا نولش است هیچ چی حکمت داشت هیچ گزوری چی قسم تغذیه میشه میگه بالاخره من به این باره فکر میکردم بالاخره این پرنده‌ای که میگه من تعقیب کردم وقتی که تعقیب کردم دیدم که نهنگ وقتی که در داخل بهر شکار را پیدا میکنم میخورم وقتی که خورد گوشت ها قات دندان هایزی بند میمانند گوشت قات دندان بند میمانند نهنگ وقتی که غذا خورد یکان دفع سر خود از بین بهر بالا میکنه سر خود از بین بهر بالا میکنه و دانو خودم واد میکنه از بالا هوا تنفس میکنه چی میکنه میگه همین مرغک در لحظه که نهنگ دو خودت به طرف بالا وواز کرده از بحر سر خود گذشته این مرغک میاد دانه دندانی میشینه و امی غذاهایی که در قاط دندانزی مانده ایره میخوره تغذیه میشن اگر نهنگ خواسته باشه که دانه خورن بسته کنه این دو شاخه که طرفان یعنی بالا هستن این مانه بسته کنه دانه بلاخره میگه دانو خوره بسته کرده نمیتونه این خرار همون دو شاخرکاش مانه شده و داره خواه مجبور است واز بگیره بیره تا که کلیه لب مگوشتکار بخوره و تخذیه شود من میگم من ایران ماندو که ایچی ذات خالق است که رزق به تمام حیوانات و بپرنده ها به این شکل میرسانه که انسان هیچ تصور کرده نمیتونه از این خاطر میگه من اونموش مجبور شدم که الله. مجبور شدون که بودم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله چی خالق است در کتابه میان که از وقت سلیمان علیه السلام بسیار پاچایی بزرگ داشت بسیار پاچایی بزرگی داشت که هر تا مثلا باد و جنها و اینها دیوها در خدمت ازی قرار داشتن نگه یک روز عزیز سلیمان علیه السلام با خداقا نمطعا گفت که خدایا اجازه ندید که من یک روز این مخلوقات ترا کنم یک وقت چون پادشاهی ما بسیار پادشاهی بزرگ است می که یک روز این تا یک دعوت بدم می خدایان متعال ورج که یه سلیمان اون مخلوقات ماو چاش گوش نه مونی همو چاش شنو را گوش نه میگه گفت که خیر است خدای ما اجازه بدید مزیاد زیاد زوام میگه سلاما هستم یک مو ز کشید در لب بحر میگه اینجا لب بحر مدیترانه اینجا یک دسترخوان بسیار کلون را عوار کرد و غذاهای مختلفی برای هر ایوان غذای مشخص چیز کرد آماده سا این غذاها را میگه بعد از یک ما وقتی که خلاص شد گفت پروردگار امروز میمانی من آماده است. شما لطفا میمان ها را بگن که به این غذای چاشت سرف کنند میگه از بحر یک ایوان سر خودا بالا کرد تمام دسترخوان سلیمان السلام پاک سرفا خورد گفت سلیمان. چی شد <تصفيق> دیگه میمانان را <رو> رایی کنم <تصفيق> پروردگارا, پروردگارا دیگه نمیتونم تمام غذایی که من آماده کردم ایره یک از ازی خاطر وقتی که انسان در مورد حیوانات فکر بکنن بسیاری وقتا یک سنکنه پرسال میگن که چطور ایمان مگه خوب مگه اصاد شما در کتاب ما میگید ازارا دلیل میگید ما دلیل کار نداریم من خودورا به چیز میخود میبینم تو با چشمت میبینی گفت من دلائل قدرت خدا را با چشم خود میبینم وقتی که سنگ میکنم در دو سنگ میبینم که در بین سنگ میبینم که یک گربه که از دانش یک برگک هست این ای خاطر میگه وقتی که من میبینم با چشم خود میبینم که ای کدام ذات است که در بین این سنگ ها و به این کرمک ای خلق کرده و بعد برازی روزای شرستان دار از خاطر از تصور انسان انسان صرف میتونه که نو کشف کنه بعد حیواناته نو کشف کنه یک نفر دیگه سو کسی کرد میکروبه کشف کرد گفتن وقتی که میکروبه کشف کرده چی کرده مفروضی که من میکروبه کشف کردم فاهمیدم که خالقی وجود داره ایچه قدر میکروب هاست چقدر میکروب هاست وقتی که در یک گلاس ها من میبینیم که چند میلیون میکروب است در یک گلاس ها گندیده شده چند میلیون میکروب است و اینه من تا دیدن همیتار است اولین بار است که کشف کردیم میگه اینمی دلیل عقلی ثابت است که برما وجود خداوند متعال جلجالهور جل را ثابت میکنه از این خاطر یکی از استادهای سایس شما استاد یک روز هم ششتا بودم او گفت که برادر من در دلابطوارهای خود وجود خداوند متعال هر روز بشاهده میکنم و عقیده ما از عقیده شما که ست فی ست قدیتر است بخاطره که من به چشم خود هر روز هزاران دلیل وجود خداوند مطال جل جلوه رو میبینم که اگر من بیان بکنم به روزها و شبها این دلائم نگه چیز نمیشه از این خاطر تمام دانشمندهای که در دنیا هستن اینا کلشان بلاخره به وجود خداوند متعال جل جلاله، ایمان داشتن این عقل انسان خودش به وجود خداوند متعال جل جلاله، انسانه انسان یایی میکنه رحنمایی میکنه دلیل دیگه که به وجود خداوند متعال وجود داره کتاب های آسمانی تمام کتاب های که از اینا میگن که خداوند وجود داره خداوند وجود داره خداوند وجود داره هر کتابی که با وجود خداوند متحال چیز داره شما ما و شما بیدنم که تمام پیغمبرهای که آمدن تمام پیغمبرها یا که آمدن خلاصی گفتار تمام پیغمبرهایی روی بود که نیست هیچ خدای غیر از یک خدا و کل پیغمبر ها میمدن میگفتن که خداوند وجود داره یک لگو بیست و چار هزار پیغمبر تمام از اینا میگه امکان نداره که مثلا کل پیغمبر ها بخیزن و کف دروغ از خود پیدا کردن، از این خاطر کل از اینا میگفتن که خداوند وجود داره تو که ما شما ببین ببینیم که میلیاردها انسان با وجود خالق ایمان دارن که خداوند وجود داره میلیاردها انسان این میلیاردها انسان کُلش دلیل است که خداوند متعال جل جلاله جل وجود دارد آیا این میلیاردها انسان به عقل و به دانش هستن که اینا به وجود خداوند اعتراف دارن این دلیل است که خدای وجود دارد و هر کدام از اینا پیش خود دلیل دارن که خدا وجود داره تمام کائنات تمام مخلوقات میخد اینو یک کتاب باز برای شخت پول باشند. شما هر چیزی که در دنیا هست. بیرون نبرایم اگر انسان عقل خوده کار پرتبا فکر بکنن هر چیزی که در طبیعت وجود داره، هر کدام از یک کتاب باز کتاب بزرگ وره چی؟ برای شناخت خالق برای شناخت کسی که ایره خلق کرده. یعنی هر کدام از اگر به طرف آسمان ببینید به طرف زمین ببینید خداوند متعال میگه که افلا یا زرونه الال کیف خلقه شما شطوره ببینید شما حیوانات رو ببینید شما گزفنده ها رو ببینید شما پرنده ها رو ببینید کیف خلقت؟ اینا چه قسم خلق شدن باشید تصفیه که در شکم یک گزفند است آلا شما اگر یک فابریکه داشته باشیم وقتی که داری فابریکه اینجا طور سوزه پردین از این طرف برطان تکی چه, چه قسم خارج میکنن تکی زرک تکی سبز خب وقتی که برای گوسفند شما کوی سبز میتین شیر سبز باید بتن شیر سفید میتن در داخل ازی، ماشین تصفیه است که یک قسمت از او شیر سفید برما میتن قسمت دیگه وجودش اگر کاتو کارت طاره کنین ببینین که خون سرخ اگر ادرارش ببینن ببینین زرد اگر آب دهانش رو ببینین سفید ببینین که با از یک سبز خداوند متعال در شکم از اون چند قسم تبلیداتی داره برای قسم میگه که اعطلا انظرون ال ال ابی کیف خلقت و ال السماء کیف رفعت شما به طرف آسمان ها میبینید که چه قسمی این آسمان ها بالای شما وجود دارن ایستاد هستن به طرف ستاره ها میبینید به طرف سیارات میبینید به طرف آفتاب و ماهتاب میبینید یک نفر فکر نمی کنه که مثلا اگر شما 5 سال پیش در خانتون یا گروهی بچت ویزون کردین 5 سال بعد وقتی شما بین در ورودی خانتون ببین باز کنین ببینین یا شکسته جزبین رفته مجبور است اینه گروپ دیگر ایده یاسمان امی افتاب چند سال است شما از یک دشما افتاب چند سال است پیر شده یا جوان است پیر است یا جوان در خم پیش افتاب که کار میکرد حالا با مو کارا میکنه یا فقط دارد ببینید که وقت وقت انسان به طرف که سر میکنه یک روز یک دانشمند یک کسی گفت, گفت مخلوق خداوند و واسطت انسان چی گرداره انسان وقتی که یک چیز میسازه مثلا یک موتور گرفتین اگر شما موتور زیاد استفاده کنین هر روز گلدامی کوید خوب یک 15 دفعه 20 دفعه بدوانین بدوارین بدواریدش بالاخره یک دمباد می‌بینین که در موتور عوارض و موتور کونه شده ولی شما اگر یک جوان بخیزن هر روز صبحی گلدز کوانتون گل 20 دفعه بدوانا کونه میشه هنوز خوب نه و قوی میشه پس ببینید که در خلق خداوند، ساخت خداوند، خداوند در یکسی خلق میکنه که با خلق ما ما فرق میکنه. شما از کلمات آرمانیک استفاده میکنند، دیگر از کلمات رنگش خلاص شد. ولی از دست که روز استفاده میکنه زیاد کار میکنیم. و وقتی که انسان سپورت میگن، دست خلاص شروع اگر میره باز دست دیگر باز پای خدا آیا دست پایش کوره شده میره یا نام شده میره؟ ضعیف شد میره یا قوی شده میره؟ بی خاطر وقتی که موسوم میبینن میبینن که قدرت خداوند متعال در هر چیز برای انسان خداوند در هر چیز قدرت خداوند برای انسان نشان میده به شرطی که ای انسان اینو چیز کنه. تابهریزه فکر بکنه. خب تناسب غذاها با وجود انسان تناسب جزاه ها با وجود انسان شما ببینید شما ببینید که در قسمت غذاها مثلا یک غذاس اگر غذا به وجود انسان تناسب نمیداشت وقتی که ما شما غذا را می خوردیم حتما مریض می‌بودیم ولی این که هر غذایی که می‌خوریم با خداوند بر ما unrelated هستند به وجود ما مفید است این خودش دلیل است که اون غذا و این وجود ما را خالق خلق کرده تا که اردوشان باید بسایی باشه به این شکل مثل که ما شما گفتیم رساندن غذاب و مخلوقات بسیار ضعیف رساندن غذاب و مخلوقات بسیار ضعیف مثل که ما او که گفتیم که در سر بحر زندگی میکنم و به این شکل که ما شما پیشتر گفتیم هر دانشمند هر دشمنند نظری داره و میگه که خداوند متعال جل جلاله وجود داره که بر امروز همه خلاق کفایت می با باقیمانده درسه ده هفته آینده ان شاء الله ما شما خاط یک دین کامل و همیشه یک دین نجات رهایی است توی ای, ای که هر که مثلا کلان ادیان ادیان‌های متفاوتی با پیشوایان متفاوتی برای رهایی و نجات آمده سوالتان مشخص بفرمایید چی سوال معلوم نمی‌کنه ما با فرض اینه سوال مثلا استاد قدرات می‌کنیم که وقتی که اسلام حکم میکنه برای نجات است برای سعادت است و اگر انسان کار بدی را انجام میده استاد پاسخ شد جمعه جمع که در قرآن هم که لا یک راه فدین قطبینه رشت من الغیه. براساس اساس همین فلسفه جهنمو به هیچ با وجود عمله بستد من قضیه را رو جا بمین قضیه ابدرحمنو ختم سوال کنم بستد که چطور وقتی یا گادم مسیرشو تغییر میده بستد دادم باید طور محکوم بنماکو بن در حالی که در آغاز پیدایش اسلام و تاریخ اسلام را می‌خونیم یا فیلم حاضر منظور عمو منظور شما تان سوالتون که لا اکراه فی در دین اکراهی نیست خوب بدی بیان شده و در تاریخ حبل اسلام اگر برگرده مستند اونجا که وقت مهاجرین میاد در حبشه و پادشاه حبشی با اونا پناه تنامیده و اون پادشاه امروزی یک انسان متمدین امروزی در ذهن هر بیننده ای که امروز زندگی میکنه یعنی تنزیه مشه. مردم بگه ایجاد میفهمی در وضعیات درک باشته در سات که اگر با قصاوت بخور میکرد در سات ممکنه برداشت خیلی بدی بود ممکنه اشمال دو جواب داشته باشه یک تبودی یک تحلیلی ما خوشحال میشیم که جواب تحلیلی بیشون بله اصلا تو که دبین انسان در اصل خود آزاد است و اختیار دین هم موضوع آزادی انسان است شما وقتی که اصلا به دوازده مکتب است؟ وقتی که شما شامل پانتون شدین شما را کس بزرد در پانتون داخل کرده بود یا کلتان بدل خود شامل پانتون شدین بدل خود اگر وقتی این وقتی که شامل پانتون شما شدین در پانتون مقررات وجود داره یا نداره شما خودتان خودت تسلیم مقررات پانتون کردین الان نمی جمزده که اکسی نفی شما ساعت اشتونیم بجمه بخاطر از اینکه ما آزاد هستم ار وقت که دلتو دستم داخل شوام هر قسم که دروازه رو خواستم بزنم، هر قسم که شد برایم بنانده این صورت ما بیم که ای آزادی نیست ای بی بندوباری است در آغاز پیش که شما شامل پانتون شیدین شما آزاد هستین میتونین پانتون نخونین میتونین برین درایووری تاکسی بکنین میتونین مامور شین ولی وقتی که شما شامل پانتون بدل خود شیدین بلاخره این قانون وجود داره که شما مجبور هستین مطابق از این قانون زندگی بکنین اینا یک نفر پیشی که در دین اسلام داخل شوهن دوستانه شما اینه که در افغانستان بسیار اون دوا وجود داره آیا در تاریخ افغانستان شما شنیدین که امون حکومت های سرسخت که حتی بسیار سرسخت داده در قسمت اسلام آیا تو شده که یک وندور بزر آورده باشه در مجید مسلمان ساخته باشن؟ شده این کار؟ کسی وندور مسلمان ساخته باشه بزر؟ بله؟ اینال وقتی وقتی که بزر اینجا آمده اینال اینجا هرکس اسلام با دل خود قبول میکنن در یک در زمان پیامبر سلام عین حادثه صورت گرفته بود که یک از یهودا خیسان دیدن که در دین مقدس اسلام دین که ما در بین مسلمان‌ها یک سلسله شک افتادیم وقتی یک سلسله شک ایجاد کنیم چه قسم شک ایجاد کردن اینا به شکل شک در بین های به ایجاد می‌کنیم که صبح میرن چند نفر بدروق در دا اسلام داخل می‌شیم و دیگر که شد میگیم که دین چندان دین نبود ما قبول نداره ما پس دین فرق کرد عزی خاطر پیغمبر صلی الله علیه و آله اینو را حکم حکم کرد کسایی که میخوان که الفتنه اشد من القتل در بین مسلمان ها به شکل فتنه بکنن بکنند، اینا باید زده شود تا که در آینده این از دست استفاده نکنند. اینال وقتی که ما شما در قسمت, قسمت آزادی ها فکر میکنیم، ما شما را گفته خداوند مطال، در چیزی که علم نداری باید توقف نکنی در این قسمت تحقیق بکنید. اصلا آل فیلن، وقتی که ما از آزادی صحبت میکنیم، کدام آزادی ما صحبت میکنیم؟ کدام آزادیه اول امو کشواره که میگه من کشور آزاد هستم. لطفاً اول اول خودشه میریم در قفس اتهام ببینیم که چقدر آزادی در اینج وجود داره. ببینین فرانسه که اساس گذار دموکراسی و آزادی میگه ما هستیم شما چه کار که دخترای شاد در در مکتبنا ایمان که با 14 در پانتون پا بردن. درست هست نیست. وقتی که با میم که ترکیه شورای هستم که ادعا ترکیه وقتی که ترکیه رو ببینین میگه که قبلا می بسوق کشور استم که در اینجا آزادی بسیار زیاد است وقتی که یک خانم در پارلمان میخواست با امر چادر داخل شود مخالفت کردند اگر آزادی باشد یک آزادی است و یکی ما باید فرق بکنیم بین آزادی و بین بی‌بندوباری. آزادی است که انسان آزادی داشته باشه داخل یک چارچوب، داخل یک معیار. یکی بی‌بندوباری است که من آزاد هستم هر چی که از دستم باید این را ما بکنیم. آیا ما منهای یک مسلمان آزاد میتونیم که بریم در بوتخانی وندو و اونجا کل سکه های کابل شش تا ما بریم بکشونیم بشکنانیم؟ اسلام بر ما اجازه نمیده ی آزادی نیست. ی آزادی نیست به خاطر اینکه ای این تجاوز است و حقوقی ازونو موضوع ایشا داخل میشه کسی امی جرأت کس نمی کردن میری آزادی گفتم میتونیم خیلی شما آزادی گفتم میتونید مثلا ی آزادی که یک نفر بخیزه کارتون های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بکشه و قالب میلیوط ها مسلمان جریحاتور بسازه و این به نام آزادی بکذاره این آزادی است کی میگه که نمی آزادی است که باید کارتون های محمد به محمد اساسا به شکل کشیده شود این آزادی نیست بیبن دوباری هست از این خاطر برای ایک از چیزهایی که در بین مردم فتن نمی کسش هست یک نفره که اگر خواستا باشه مثلا زین خودا ترک میکنه یا نمیخواهیه یا چطور میکنه خودی جا پیش خود خودش خلاص از دیگه. آمریکی‌ها هم نفر می‌خیدن به خاطر از اینکه مسائل سیاسی ویگاپا زیاتر ویگاپا نقش داره از خاطر که چیز کنن و چند تا پی پیسان می‌گیرن بدون از اینکه اون را بگذارن که دلیل خدا بگویت بدون از اون کلام دلیل داشته باشه میخزده بین مردم و بالاخره اونجا کابین‌ها می‌بینن پیامبر صلی الله علیه وسلم و سلم که ابر ما شما از مادر پدر ما که ارزشش زیاتر است چون ایتالیا مثلا اونجا پارلمانش جلسه نگیره فنا گفت که اینه کار کنه بعد از واهدیره نکنید و خاطر که اصلا اینجا آزادی چی خسم است؟ آزادی ما را که من خار دارم چی خسم آزادی است؟ آزادی است که مثلا اگر یک دختر در خرد بدون لباس دسته میشینه میگه این آزاد است ولی اگر یک دختر مسلمان میبا چادر میشینه میگه این؟ باید نباشن بناً اصلا کسایی که ادعای آزادی میکنن آزادی اینو گفترا میشن آزادی در اسلام داخل یک شوکات است و این به بندوباری وقتی که فتنه کس میپرده و در بین مسلمانا فتنه انگیزی میکنن از این خاطر در قرائت قران میگه الفتنه اشد من القتل فتنه انگیزی اختلاف در بین مردم انداختن مردم اذیت کردن قلب های مردم را دار ساختن این خودش این فتنه است که اشد من القتل از قتل چون مردم اضافه تر است ازی خاطر برای یک قسم انسان ها اگر امین اگر بدست شما اینونی کسی که اهانت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و الی کرده و کاتولاشو ساختن اگر شما قاضی محکمه باشیید چیوو می‌کنین؟ احکم ازی ادام است بخاطر چیوو حکم ازی ادام است بخاطر ازی که پیغمبر صلی الله علیه و در قرآن ازی وشان وقتی که ما شما میخونیم بیاین احقیقت از دا اقل درد بکرن حد اقل قرآن عظیم شوانا بخوره ما شما ورود یوسف جستسا دبایی یوسف جستس وقتی ما شما بحث کردیم او یک انسان واقع متمدن بود باشوز تاعقیق میخواست به حق برسن این کتابه ای کتاب که مثلا جانشماندا رییس کنن که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتش بنت بخواید که پیغمبران دارای چه شخصیتی بود که ما شما یک دست باری باره شخصیت پیغمبر صلی الله علیه هم داشتیم ولی برعکس یک نفر که میخواد به نام آزادی خود یکی از دارشماندا چی میگه میگه از فرانسه قایم شده اونجا مجسمه آزادی نفس بود نمیفهم که کسی یکی از دارشماندا اسنه که ای مجسمه آزادی به نام تو چی جنایاتی را مردم میکنن بنابراین انسان باید بین آزادی و بین بیبندباری بین احترام به ملت‌ها و بین ای که ملت‌ها ملتها را جریه ساختن بین اینکه که مثلا یک نفر خودش آزاد است و بین از ای که کل مردم ها در و در قسمت از یا باید انسان فرق بکنه و در نهایتش در قسمت تصمیم بگیره आग धर्म जी लियो ما به شکل اسقاط یا دورها دور دادن از قرآن مثلا تنها آیه قرآن را در جای نشکا کردن این زینه دادن خانه خود یا قرشیدی تا گردن خود آویزان کردن و به همراهی ازید پشموب رفتن آیه الکرسی را گردن پهلوان آویزان میکنن و با پشموب میزنن میگه اینا پوست است اینا فوضی است ما ایده ترک کردیم ما خود قرآن است حقیقت قرآن است نزد قرآن هن. که از الف لام شروع تا و نص ایده ما برداشتیم این چه در قسمت جواب سوال دومه تا که در خرب اسلام اسلام در خرب در رنج است در خرب کدام قسمت یک تیراپ کسای متعصبین حسن که اونا میخوان که مردم آن خربه از اسلام بی‌خبر بسازن در صر درجه میگه که محمد صلی الله علیه و سلم میخوان رسوایی بکنن با شکل‌های دیگه که ما امروز می‌بینیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلام به این شکل شما شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و می‌بینیم که یک نفر میگه که یک روز ما بوامره پیغمبر صلی الله علیه و آله می رسوم. یک کس آمد که اس از, شا... از از پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و آله نگاشوانی پیغمبر صلی الله علیه و آله یک تفیه گردن از یومد. یک کس که پیغمبر صلی الله خود نگرون خدا داد که کردن که اول پیغمبرانم عصبانی میشن نگرون سنازی در داد قف خیریت است که برای من فلانیش کارنما بر ما هم کمک بکنیم دیوارش گفت که اول خلاص شد در ان شاء الله براتون این اخلاق پیغمبر صلی حضرت سال در خانه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اسلام زندگی میکردم در دوازده سال بر ما رو کردی چطور دیگه میگه که روان کرد. مرد توری میکردم نگاه آمد از پشت شانی مگرف برای من گفت که همون کاری که برای گفته بودم من اینکه جا عرب مسلمان ها هست که وقتی که ما مثل ما یک قارب رو بیبریم، به یه لحظه ممثل قرآن بازیم، خدا قرآن متحرک بسازد، خدا هم مثل از را جور میکنیم. اگر اون یک لحظه شراب میخوره مسلمان دو لحظه شراب میخورن. این مسلمان میتونه که در وجود ازت تغییر بده. من از خانمی رو در جهودیه، مگه دیتی از کشور دشمال افیقا، باید بگویم که خانم مثل مسلمان شدی. مسلمان مثل اونه ما رو جذبیرو زد شراب وقتی که بازو خیمازو دم خیلک میزنن مهیش وقتی اسلام قبول نمیکن عزی خاطر ربنا را تجالنا فتنتنا للذین کفر و خدا و ما را وسیله کفر به دیگران نگردانی که اعمال ما را ببینن اسلام از اسلام متنفر شد شما در فرقا ببین وقتی که یک نظر بسیاری مردم افغانسان ساید موتر شدن فرهنگ سرهنگ موترداریه ندارن وقتی که یک زنو میبینن یک از این شد. و وقتی ما میگیم که تأثیر تاثیر بکنیم که ما خود ما صحابه پیغمبر چی بودن صحابه پیغمبر قرانای متحرک بودن یعنی اعمالشان نشاستشون، برخوردشون مثل قرآن از ایشون میورد. از خاطر تاثیر میکنن کنه. همین که ما به شما کارخونه داریم که شما در سایت اینترنت دینی و مسلمنز دی برین، م... یک... از یک... یکی از معصومین agora چی دور؟ که ما دیدیم که یک مسلمان یک زن ترادر بود. لبوس حجاب پسیده بود. لباس با حجاب دختر مسلمان مرا مسلمان صح. فهمیدیم که اینمی دختری که حجاب میپوشه، شخصیت داره، حیثیت داره، کارمند داره. در با صادار وقتی که در سر دست, دست میخوانه، با حجاب دست میخوانه. ای وقت میکنه با اون دختری که در بودن دور ما وسیله و آلو دستش آگدا هست، واسیله دست مرد هست تمام روز نیه رخت آتا که مرد از وجود دستفلاک نداره. نگی یک دختر مسلمان مرا مسلمان صح. اگر ما حقیقتاً اسلام را تنسیل کرده بطارین خود دو خرابی هست ها دو خرابی هست اگر اگر طرف آسیه دو بیشاره که